آن که از عجل ریزان گردم، چون برگ زشاخ عمر ریزان گردم، آلم به نشات دل و غربال کنیم، زن پیش که خاک خاک بیزان گردم. این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم، خورشید چراغدان آلم فانوس، ما چون صوریم که اندر او گردانیم. از آب و گلم سرشته من چه کنم؟ وین پشما غصب تو من چه کنم، هر نیک و بدی که آید از ما به وجود، تو بر من نوشته من چه کنم؟ ای دوست، بیا تا غم فردا مخوریم، وین یک دمه عمر را قنیمت شمریم، ودا که از این دیر که هندر گذریم با هفت هزار سالگان هم سفریم،